حي خیر خير العمل یا هستش همیشه یا ساکن باب ساکن اگه قبلش اع باشه مثل خیر مثل سیر این حروف بشه میگم حروف لین باید با نرمی خونده بهش خیره بعضا فتحه خر میکشه میگه خیر یا رو میتونی بکشی حیا لا خیر خوی خیر على خير العمل